توی جداره داخلی دیواره رحم دی توده ایجاد شده. الان مقاومتش چهار میله. هرچی این انسجامت بیشتر بشه دردی که می‌کشی هم بیشتره. آواماله‌ مختلف نمی‌تونه بررسی بشه. خود شریطی برای نوع تغذیه یا خیلی چیزای دیگه. پیشرفت این ضایعه باعث نازاییت میشه. حتی در موارد احتمال سرطان رحم وجود داره. نظر من باید بچه شم. وقتی رحم فعالیت باربریش شروع میکنه هم تغییر میکنه به خصوص بعد از رای خب خوب دیگه دوچار چنین ارزی نمیشه در واقع رحم تو الان به این تغییر احتیاج داره اصلا دلت میخواد بچه داشتی؟ دارم میم حالا میام میگم پیمن اومده خیلی خوب من راه نفتم باشی باشی خود سلام کجایی پس بچه رو برای چی آوردی اینجا نمیست چه میدونم این آوردتش بی حاجون اومد سلام. سلام. سلام سلام شیرستان باتونم بفرمایید جان اینجا, اینجا. ما çekim کنید مشکلی نداشته باشه فراد فراد من هیچی ازت نمیخوام تو رو خدا لج نگم ملیا رو بده به من ما هیچ سال این بچه رو اذیت کردیم بذار آرامش داشته باشه با تو آرامش داشته باشه ملیا خونه خودش اگه نگرانش نگرانش هستم فقط ریخت تو رو دیگه نمیتونم تحمل کنم. اگه پیش تو بمونه یه میشه مثل خدایش مثل آیل بخشیدا شما اینجا کاری ندارید بفرمایید بیرون دعواتونو بکنید بفرمایید تاختش اینو میگم حالا بگو دیگه آقا اونجا هم اون درو اشتباه پروژه زدم من نزدم تو پارک زدم به پایین بذار ایلیا مامان بیه عزیزم ماما برای شیر خریده بیه بگی ماما شیر کاکاوه با از این بیسکویت هایی که دوست داری یه غربونه دارم صبحونه نخورتی بیه عزیزم نخور مذارم اینجا بخور باشه ماما عزیزم من زود میام میبینم باشه ماما پسر خوبه باش بخوری اما ما شکاکاوته خور خوبی؟ میخوای بیانم پسر؟ نه دکتر چی شد؟ نیده میخوای این اومد من. من رفتم خدافت خدافت می پای می. بزید چند ساعتی پیش شما باشه. دوست داری با من؟ مرسی. من خونه می. خب ناشتا می خوره. می بریم مامان. نه قربون. خدافظ. خدافظ. ا خدا بیامو. خدا uh, چی می خوری؟ داش. جوجه خوبه خاله. جوجه می uh, دو تا جوجه uh, دو تا کوبیده یه جوجه. ست سالاد. به نوش آبا هم بیاری سه تا ماستم سه تا بزنیم کجا خالا؟ دستشو دستشوی تنین راه رو برو تا ته برو خب دیگه حالا نیست بگو چی گفتکت بعد بعد چه دار خب بشیم چرا یه توده تو راهی من دارم توده خیلی تعجب نکرد گفت چیز هرچی نیست خیلی از زنو خطرناد آوه چگاه بدکن؟ قرصی روایی گفتی که تنها باش که بچه داشتی حسه میمونه چشمه آب باز میمونه پاهامون روی زمین جدا نمیشه خیلی خوب. حالا رو بدیم به هم رو دستو بده. باز باز باز باز خیلی خوب. حالا همه من گوش بدن. با شیلن صدای سیپ ما یه نفس بزرگ توی سینمون حفظ میکنیم دستا رو بالا چشیده نگه میداریم میریم زیرا، آب. پاهامون زیاد ثابت میمونه. دهنا بسته چشما بازه. دستا بالا همه چشیده دستو چشیده زمین. پاری زمین دهنه بخصه دو متری برو پایین دسته کشیده دسته کشیده برو دسته کشیده دستان دمه در کارت داد اینکیه نمیدون رو نمیدون ببرای نوشی کنم بچه بیرون بچه بیرون از ها سلام رو گیجه گرفتم منم شو começo ساکت اصلا حرف نمی زنه. خب موقع موقعی که داشتم دیگه جر می‌دادیم باز فکر می‌می‌زنم نمی‌تونه تو اصلا جایش دری. من اینجا شوخی نکن. میز کی بزنمش برم. میز اینجا با بچه‌ها سرگرم بشه خودش خوب شد. خب ببر بزن پیش نسیم. نچ نداره که اون که خودش این بچه مادرش رو می‌خواد و حق داره. من خودم خودمون جر دادم که این بچه پیشمون نمونه. الان بزنمش پیشمون. که چند روز هوای من داشتیش عظام سرسامون پیدا می‌کنه. عظام تو سرسامون پیدا می‌کنه. گیرم په اوزای خونه داغونه اون برد جنسان تو گمرو گیره یک کمکی بکن خودم جمعه جو بکن دمیگ دارم دوست سری خب باید بهش نگاه کنیم حامد همینو میبرم میام با تسابه Do you enjoy it? Oh boy, they're out of there, so you can. Here, there یا یه باید دیگه انجام بده برام نه, نه نه ببین گوش بده باشه من نگاه کن آروم باش آروم باش یه نفس بگیر و رو توی آب نفسک خالی کن دهنه تو توی آب باز نکن سه دو یک آبک بیارش بگیر یه کسانی اونا حالا می‌خوای چیکار کنی؟ دری و دکتر آدم اسمش. اسم دکترمه دیگه. آدم که خدا. خدا. چی بگه؟ خدا. حالا حال شما خوبه؟ قربون شما. خیلی ممنون. خدافظ. سلام. تو چی شدی؟ با خیلی کلی که اینجایی اما ایلیا یه دقیقه بشین کماشون من با بابا کار را بذار من دردش بیا فرقی دفتی استخ خوش گذاشت بشین کماشون بیا کلکم درد بشرو بله فاصله صورتش کرد به نظر نفسش یه نفسش آره نمیدونه نه یه دکتر رو نشونش بده خداحافظ خداحافظ کوبی از یه چیه؟ یه چیلیا روز با ماست نه مادرهای دکتر اینا رو میگم تو آب نفس کم میاد خب بچه دیگه به من داری میگه غیر طبیعی همه خوبه که میاد اینجا بهتر از اون خونه درم دشته خریشی سارا اینا از این میبادی درمیشون هم این دیگه صارم یه فکری بال خود بکنی. چه فکری؟ همین که بچه دارشین میگه امشب که دیره بذار یه شب دیگه بامزه شدی؟ بازا جدایی از شوخی مگه دکتر نگفت بجام؟ حالا دکتر برخوشش چیزی گفته خواهی یه چیزی برای خودش گفته چرا میری پیشش پیمان لباس نمیخواییم بخریم ما صحبت یه آدمه باور کن منم دلم مثل هر زن دیگه بچه داشتم ولی الان ما که نبییم قرار چی پیش بیاد مگی قلید چی پیش بیاد هیچی همینجوری سارا هیچی همینجوری کلی میگم پیمان تو اصلا بهش فکر کردی میتونی پدر خوبی باشی؟ نمیدونم میتونم منم مطمئن نیستم بتونم مادر خوبی باشم ولی میتونی مادر قشنگی باشی خیلی خر شدم ببین پیمان، من, من واقعا نمیتونم چمجوره هلو حالا که تصمیم میگیرم بذاری کم فکر کنم فکر کردن نداری که تکلیف معلومه باز من دستت. دوباره بدیه. من بحث کن. برو تک صاف باز من تو به من بدون باز من نمینم تو. ثانیه بچا. ایلیا یواش ثانیه یواش. ایلیا. چا. تو اون چهش کار می‌کنی؟ اگه تو نغوسن نای نما، ورش نوسی باز من تو. حالا دیدی مول نه. نه. اجازه نداریم این بیاریم. کدومی میخوایی انتخاب؟ بابا، بابا، کاملا شد مجازت تو. اجازه نداری بیار. نه دلایلی است. آری بیشتر بیکنی. نه. نه. شما چی میخوان نشانو؟ نه خانی کار آروم. پادر اوربنا سلام خداحافظ اوربنا سارا جان اگه یه وقت به هر دلیلی نسیم اومد اینجا جز ندیدین ایدا رو تحویلش چی شده بابا چی شده ولی چی گوزاش لحظه به لحظه زندگی منو می‌دیده رفیقه شاید من نخوامون بدون ایدا رو کجا می‌بره سارا جان من مادرشه خب گفتم داره میاد استراحت میگه چیه اون فقط جواما مادرشه رفاقت اون میز به هم, هم. نراختی یعنی سارا هم گفتم اگه یه وقت نسیم اومد اینجا ایدا رو تحویلش نمیده خدافظ داری؟ یا چا؟ همیشه میگفتی فکر نمی یه روز ازدواج کنی. خب. خب اینم هم مثل همونه دیگه سارا جان. آدم‌ها با ازدواج می‌کنن بچه‌دار میشن. یه خیال اینو به خاطر من نی. آره خب چون هیچی مهمتره سلامتی تو نیست خب مشکل من دقیقا همینه این که برای سلامتی خودم مجبورم این بچه رو به دنیا بیارم گناه دارم فیلی خودخواهیه نازشم دبین این شرایط بل هلکی و یعنی منم دلم نید که یه روی مادرشم ولی سخت کردم تو سخت نیست؟ سخته معلومی که سخته ولی بر من سخته میشه موقعی که برای توی اتفاق بعدی بیارتی بگنه سخته من باید دومالی یک کار دیگه باشم چون تو که تا مدتا نمیتونی کار کنی از همینجا بگیر برو جلو ریزو درشت سخته ولی ظاهرن ما انتخاب دیگه ای نداریم باید بپذیر میشه خودت هم خوب میدونی این اتفاق یه روز باید برای ما هم می افتاده هلون افتاده جلو برای خودت دلجو قریبش نکنساند دست به جمعون زودتر از این دردم مزخرف زخرف خلص شد پی ما چونم نگه ما میتونیم؟ دعیمونو میکنم اسمشو چی بذاریم؟ طرفتی قوام فروتن پروتن انتهای راه رو را دستگیری امونه تو هم بذاریم همون رو چرا رفتی داره؟ اسم منم دوتا علفتر آمیتیس؟ چی؟ آمیتیس، آرتمیس معنیش چیه؟ کدومش؟ <تصفح> <تصفح> <تصفح> نمیدم چرا تازگی ها مد شده مردم برای بچه هاشون اسمان یه چیم قریب نه نمیدم خیلی میکنن خیلی خواستن یا خیلی شیکن سه میرام نیست؟ نارسیس آخه حالا اصلا چرا گیر دادیم به اسم دختر از کجا؟ من اون پسر آب دارن خب حالا یه پسر دختر. تو اصلا کدومشون میشتر دوست داری؟ اختر میمیرم پسر که یه آلمه دارم دیگه هر روز میمینمشون یه جوری هن هایپر هن پسران ها. شما بچه بودین این هایپر نبودی؟ نبودیم به خدا نبودیم ای پسر صاف تو چشم من نگاه میکنه میگه پول دادی مخواه تو آب <تصفيق> نه ترسیدم باز گیر کنیم نتونی بیام ناراحت منم شما پیمانم و چه عجبا تو همیشه شاکی هستی هیچ با سارا بودم سارا چرا همیشه شاکی؟ اوه، تام که شهید دست درد ندونی بگیر بشین از وقتی اومدی همش تو آشپزخونه اینو ادا بکنی نکنه کم رنگی مال سارا سارا تو یه چیزی به ازه بگو دو روز من بدون تلویزیون آخه. چقدر در و دیوار رو نگاه کنم پدر پ در تقصثیر خودت من دهبار این رو تنظیم کردم شما هر بار این دکمار رو با هم میزنی پاک میشه من دارم همون کار رو ابلی رو میکنم ا شما سا اون دفتر چرا به من بده چ شما خوب نیست به بهانه تلویزیون هم از خونه بمونید پیاده رو هیچی می یه چیه کجا حرف نزن بیا این دفتر رو دی. هر کاری که کردی تو دفتر بریز، تا خودم انجام بده من ده بار اینا رو نوشتم میکنی میندازی؟ دور چیکار کار میکنی مارا؟ نمی... شما یکی چسب بیار نمیخوادین دفت چسب یکی چسب... چسب باره چی؟ یکی چسب نواری بیار بهت بگیم اینم چسب میخواد فیل هوا کنم چسب خیلی. گناه داره بند خدا پسی وقتا بیا دنبالش ببرش بیرونی جایی کجا جا به بند خونه ما به زور میاد می اینم چس ببینم چیکار میکنه. حالا آره دیگه من دیوانه شدم حالا آره چین شما به 90 درصد دکمه این کنترل اگرم بخواین دیگه دسترسی ندارین همین دو خط پایین فقط فقط دو خط پایین منو بیا بگیر امید. مثل قبل بچینی شو مثل قبل تقریبا با می‌شیم وقتی سال نمیدونم برای شما چون خود کنید نکن نکن داری پدر بزرگ میشی مثلا از شما بایی داری دارم برای نوه میرم زر نزن نوه نارا ناراحت نه نکن ناراحت نیستم الان نها پدر کجا این کشفرها در اجنسه بیدن بیدن از تا ما اصلاً قبل با فشنا رو شروع میکنه یه سازه دیگه و برو برمید و بیا پایی چند با چودی هم بیا این پنجا هزار برای عروس گلم اینم برای تو دستشون رو درپن کنه ولی به چه مناسبت؟ خوش کردم برای پا قدم این فسقلی یک کاری کرده باشه ببخشید کمه پدر جون هنوز که خبری نیست همین که تصمیم گرفتین یعنی خبر آدم باید بچه دار بشه این طبیعت آدم هست. الان بیا اگه این شازده نبود کی کانال های تلویزیون من رو درست میکرد؟ من میشه خواهش بنا فعلا به پدر آمدن من چیزی نگیل بلی چی؟ بلی هنوز چی معلوم نیست به وقتش خودم میگم باشم نسین سلام چی شده خب یه بالا باشه علامیم پایی باشه سلام سلام مم. چی شده یه چی قضا پختم نید بر برای برای ایلیا چی خودت میمیدی با صرف فرق دو برد باشه برمان ببخشی دار نسیم میخوایی با هم ببری؟ بله هی hey بله من با نسیم یه سر پیش ایلیا غذا پخته برش هشیمون نیستی؟ پس چیه؟ از اینکه مجموری حالا اینجوری بر بچه قضا ببری جایی من نبودی من و فراد از اولم از اون با هم خوب نبود بگرنه دیوونه که نبودم زندگی رو بیل کنم بچه همو بذارم بیام بیرون دفتر بچه هم داشت دیوونه میشد دیگه پیش مشاور نمیم بریش با برکن نصف اینکه جدا شدم به خاطر اونه دیگه نمیخواستم دعوایی ما رو ببینه یه مدت بگذره بهتر میشه. شاورو نمیخواد دیگه. چرا چه راچلو شده. باشه، خیلی هم. بهترین تجربه زندگی من. دنیا عوضش نمی کنم پشیمون نیستم که اومده نه منظورم اینه که شما که با هم خوب نبودی اصلا برای چی بچو داشتین؟ موقع فرهاد سرباز بود. کارش تهران بود بعد یه قانونی بود که اگه که یکی بچه داشته باشه بتونه سربازشو تو همون تو شهر یکی زندگی می کنه بگذارم چرا تا حالا با من نگفته بودی؟ این چی می اما تا وقتی پیش اومد فکرم بچه که بیاد همه چی بهتر میشه. این نشد تو خدا تو حفاظ تو جمع کن اول مطمئن شو حوضاتون خوبه گرفتاریه ما چیز این چیزا نیست آخ تو رای دیگه این نسیم قضا پخته برای ایلیا آوردن تو آوردی؟ نه با نسیم اومدم نشسته تو ماشی میفرستمش بیاد دمیدن ممنون دره میاد دمیدن اگر خودت برگش بکر با. ما برمیگردی جوجه ها مایاتونو سری پنجه رو دیگه لباب نیا نوبلتون ها سهره جام جام نه خانمه دمیدر خارد دارم کیه؟ نمیدونم دفت دوسته سلام سلام خوبی؟ خوب چی شده؟ از دیشب یه حالیم. خشم ایلیار ببینم. پیمان میگی یه دقیقه بیارتش؟ توش. یه نامه است. با خشدار. نیما جان یه دقیقه میگی پیمان بیاد داماد. ناسیم اومده برای چی؟ نه ایلیا رو صدا میکنم اگه فراد نبو که نبوید با, با نمیخواد ببرتش که خب دقیقه ببینه با با سیده ناسیم بارتا دستا کشیده کشیده ایلیا ایلیا میاد مامان هت میاد. شما برای چی میایین اینجا؟ مامان هت میایین خودرو. سلام چه شد؟ بیوه. سر تمرین با باید توی آب بابا یه دقیقه این بخواد بیاد نام اجا کردم ماشینی رو بول بول من از اون از راه کرد. حالا من اینجا علاق کردید تا شما بیاید. ما شاء الله چش چش درست میشم. مثلا من شما رو کمک مرحبا. کنم. در نکنم. کنم مرحبا. مرحبا. بول بول من کمک اینه که ماشینی تو اینجا پارک کردید چش. کمک یه اورژانس. ان شاء الله شفا میده مریضتون. حتما بتونن. چی شده؟ یه چیزی رو پارک کردید مریض ویلچری دارید خمه من دکتر. بس زنگ بزنم. ا تو به فرهاد زنگ زدین؟ ای بابا، بابا چه چیزیش نبود دیگه برای چی نگرانش کنم میخوری؟ سرش مش... قوام هستم. بله من میخواستم یه وازنمیشون ببرم دکتر ببینن هستم؟ بله باشه نیم ساعت دیگه. ممنونم خداحافظ. بله. همه چی ازین. قرار نیست که تو بفهمی دکتر گفت خوبه همه چی دیگه. دکتر گفته حل دیگه ها؟ بله. جونم فرد. چطور؟ چی شده؟ پیمان چی میگه؟ پیمان چی شده؟ چی میگه؟ باید بیه؟ باشه، باش باشه من فرهاد به, به گولج کردی. چه سی و سالم سالمو وقتی تحویلش دادم برای همین چیزی بهش نگفتم. باباجون پدرشه چرا اگه همون موقع میگفتی یه فکری می‌کردم. میگم برد. چیزیش نبود. من نمیدونم این هم آدم چنسته خواسیتون کجا بوده. نسیمه. جواب نده. یعنی چی؟ بابا. چی می‌خوای بهش بگی وقتی نمیدونیم چی شده. بس برسیم بیمارستان. اینم واقعا این کارا داره منو دیوونه میکنه. اول که به گفتم به فرهاد بگو نگفتی. الان میگی جواب اینو نده. چرا دیوونه بازی در تصریم <تصفيق> منجاش آبا زیادی که بارد ریاهاش شده او خونت اجاد کردیم بچه شما ریاهی خیلی سالمی نداره چطور با تو بچه نشدیم نیرستم که بستاریش کنم باید کن نظر بشه که او خونت وارد خوندش بشه کار رو سلام سلام چطور حالش؟ بچه شما داره شما داره نید نه شد به خودم اومد دیدیم داره تو امیق دست رو میزنه تا پریدم بیارمش بیرون از حال رد تو امیق چیکار میکنم نمیدن نمیدن دوتا از بچه ها یه سمت دیگه سخت در شده بود همه درگیرون برشده نفن نمیش ولی چی نگفتی بای خب یکم بعد حادش جام اومد دیدی که خودت چیزیش نه گفتم نگران نش بایدش کنم با <مادرش> باید جواب کنم باید مادر بشته به من اون زن زن زدی درستش کنیم اون بهش میگید میشه ببینمش آبه باید شما گرد two message چرا نمیتونیم که جواب نمیتونیم من با حرف نمیزم سودم تم الو. سلام نسیم جان نه ندیدم دیشب زنگ زدی بگو دیرو... رب... نه چطور چی تا جایی که من میدونم دیروز که استخت بوده بعدم اصر فرهاد اومده دنبالش دیگه بعدش خبر نداریم آره بابا خوب بد باش قربون باش به میگم باش قربون خدا شعر میشم ها چیکار کنم سارا این میگه قرار بود فرات دیشب ایلیا رو ببر کشش خب، زنگ نزد دیگه گفت بهش میگم مجموعه ایلیا مهران فرد تو اینجا چیکار میکنی؟ ایلیا کجاست؟ با تو هم فیما ایلیا کجاست؟ نه ایمده امروز نه ایمده امروز جواب تلفن منو نمیدین فرها جواب تلفن نمیده خونم نیستن تکر این من بچم؟ چی داریم من قایم می چیزی شده؟ بیوید بگیم بگو همینجا بگیم بیوید بگم دیگم بگو دیگه این مادر اون پسر هست که افتاد تو آب؟ آره چرا امروز نگ نده؟ نمیاد دیگه باباش دوست ندر میادشه چیه فراد؟ بابا دو روز پیچونده میشه خب معلوم پا میشه میاد اینجا؟ داشت آبروی منو میروه فرهاد فرهاد فرح... فرح... مادرشو نمیشه این چیز ازش بایم کرد میفهمی؟ تو مگه خودت قرر نبود بهش بگی؟ میگم تو خودت مگه قرر نبود بهش بگی؟ درو با توی چی نبود حالا پما اینجوری مراقب بچه منی؟ با تا هم اینجوری مراقب بچه منی نیم اینجا حواست کجا بود؟ لالی، شما وظیفه به حرف سنت باش. ما هوا... خوصد ما هواخور شما عوض شده کجاو دفتر بچه رو آوارہ کردید؟ ما گویا تیم بعد کردم نذارن فوقونه درند آواره بشه بچه شما. ما غیر قبول می‌کنیم بچه ما این انصافه که وضعیت سارا رو بهتر از من میدونی. من هیچ تلاشی من باید هواش رو بزنید نباید باشی شما. اینو نمیذارم خودت کاری بود که بچه‌تون مراقبت کنیم که اگر بچه‌م مراقبت کردین، الان میشه میمونه اینکه دیگه بچهش اگه بچه تو بود حالا من از این بچه تو گفتم این بچه رو برد رفته ولی کنپ این محالم خوب نیست پشتگوش انداخته میدونم اقا جون میدونم ویدم تو دیگه نگو همه چی میرخته به هم اون از کار اون از خونه کنترل همه چی از از هم در رفته گرفتار بودم نشد نمیدونم یادم نفت من دیگه کشده پیما پیما پیما سارا یخوره <تصفح> <تصفح> تشخیص دکتر خودش چی بوده همین شما گفتی خب تو فکرش هستیم هم دکتر فقط بقد... اون روزا یه ذره اوزامون به هم اختست. در صورت من اصلا صلاح نمی بینم بخواد مسکن مصرف کنه شوخی نگیرید چشم سرامش که تموم شد میتونه بره باش ممنون بهتری دکتره چی گفت حرف جدیدی نزن اینه خودم فراد اینجاست نسی من بیشه ایلیاست حیمان چونم ایلیا چیزش نشه حتما هیبیمار بعد از این، حتما هیبیمار بعد از این ایستگاه برای یه دکتوری دیگه هم ببیندش حتما یه رای دیگه هم هست نه دیگه الانم هم همون زن سرالش خوب نیست من نگرانشم الان با این نمیدونم چه غلطی باید بکنم ترسیاب پاها کشیده دستا کشیده کشیده پاها دروی در دو شاید هم سرا پایین پای اقعا بی پنجه زان رو نمیشکنیم آن ببه های فروتن های فروتن چه از بین بله بیا توها و آوستی با شما کاردوان بفرم آقای فروتن هل. بفرم بشین من بکیل خانم نسیمی هستم خب اشکال ننشتن تا سوال از این بپرسویم؟ خوش بنام شما از کی متوجه شدیم که پسر خانوه مشکل تنفسی دارم شما این از کجا بود؟ همسرتون به مواکل من, من بله اصلا اون روز اولی که این بچه اومد اینجا فهمید با شما اینکه با پدرش در این بزشتیم؟ همون روز. آیا آیایشون پیگیری کردن داستانه؟ نه خیلی نمیدونم آه... میشه بپرسم شما دنبال چی هستم؟ من اومدم اینجا تواظر کردن که اون دادگاهی که برگشت و خدمتون میفرستن حاضر بشین و این بطاله که اونجا تکرار دادگاه چی؟ موکل من مدت هاست دنبال حضامت بچهشه هزانت الان طبق قانون به اخته پدری ولی با توجه به بی کفاتی پدر و اسناد شواهی بیم که در دست است بربطی با شهادت شما ممکن بتونید هزانت این مادر برگرد بربطی با کمکی شما من نمیتونم به شما کمکی کنم بین که پدر این بچه رفیق منه من بیام تو دادگاه چی بگم مادرش هم با شماست بله متاسفانه مادرش هم رفیق منه و من چوب همین رفاقات رو دارم میخواه نمیتونم به شما کمک کنم کن. میگویم ولی به احال این بچه به خاطر سهلنگاری شما با البته پدرش به روز افتاده و این کمترین کاری که شما دهیم درم دهیم بچه انجامه نمیتونم به شما کمک کنم یه لحظه تشبهش شما میتونم آن می من خدمت آقای فروتن هستم. متاسفانه علیرغم همه تلاشی کردم. ایشون حاضر میشم بیان نداکه. بله گوش خدمت من داشتم. خوش بابا تو رو خدا بس کنید این بچه بازیاتونو. نه من نمیام. نه معلومه ن... نمیام نسیم بیام چی بگم اونجا اے چه حرفیه تو میزنی؟ نسیم گوش بده فر... فرهاد فرهاد رفیق منه نسیم. من بیام تو دادگاه چی بگم بر نه نمیام. نمیام، نمیام. نه گوش گوش کن. گوش کن نمیذاری من حرفام بزنم که. اگه نظر منو بخوای نه تو نه فرهاد هیچ کدوم صلاحیت نگهداری از ایلیار نداریم. نه من نمیام نه نه, نه نه بعدم گوش کن به این وکیلت بگو دیگه این برام پیداش نشه اینجا محل کار منه هرموز به این نباشم به خدا من به نسیم گفتم که همه چی از شده تو نبیدیم که قلعه داستان درست کنه نمیدید چه جوداش با تحق میذرد؟ تو رفیقتو نمیشنسیم؟ نیما جانم نیما قربانت برای چی باشه فردا میام با هم حرف رزن فردا سو خداحفظ. چی میگه میچی گفت فردا قبل از اینکه که بری تو بیا با هم حرف زن. باشه باشه آی فرق خار آی فرق خار در جا با کن خدمت شما تمامون چماما امون بده نیما نیما امون بدم؟ امونی چی بدم؟ سرخور درست بچه مردم میگیری میاری اینجا به منم نمیگی اونم بچه مریض همون بدم چیزی نشده که آمون. چیزی نشده بچه افتاده گوشه بیمارستان ننه باباش دارن شکایت میکنن ببین تو دادگاه بازی اینو به گوش فدراسیون برس اینجا چه خبره من را دراز میکنن اصلاً شار... میگی چیزی نشده شرایط منی که میدونی من نمیتونم الان کار نکنم نمیشه بیکار شدن ببین جو. پیمان جون اون موقع که دست بچه رفیق گرفتی و بردی اینجا بعد فکر شرایطت میکردی بعدش بعدشم. برای تو کار زیاده فدراسیون برام دردسر درست نکن تو به زندگی برو اختیارم شو چرا وقتی اوزامون این شروعی از در رو برمون میبارم بله بله بفرمیم شما برای چی به گوشه من زنگ زدیم؟ نخیل آره چی خیل خوب کجا جواب بیه اس اس مس خونید آدرس آدرس رو اس مس خدا بس خوب این شکایتیه که موکل من از من خواسته علیه شما تنظیم کنم ولی هنه زوش اقدامی نکردم به چه می کوتاهی و بیتوجهی در انجام مسئولیت؟ ایشون از من خواستم که بهتون پیغام بدم بیاین دادگاه و همون چیزایی که میدونین بازم بگیم. اگر بیاین که خب لطف کرد ولی اگه نه این مجبورم این شکایتو جریان به جریان که فکر نمی کنم به نفعتون باشه ولی... نسیم چرا خودش نرم با ترجیح نگفته دادن که من بگم. خب اون که این چیزارو رو دونه از احلین داستانه نیست شما یادش می دیگه خانم من دارم انجام وظیفه می کنم بیم سرم من یک بار دیگه تاکید می کنم اگه روز دادگاه نیاین باید برای دادگاه خودتون تشم بگیاریم ممنون نفتیم اینجاست؟ نه چی شده؟ تلفنشو جواب نمیده اینجاست؟ چی شده؟ آقا نگفتم بی خیال ما شد. به تو گفتم این بچه رو مادرش نبردی لش کردی فرات. گفتم مسئولیت قبول نمی‌کنم. گفتی کمک کن، رفاقت کن. گفتم باشه اینو دستم ازدم. چی شده حالا؟ چی شده؟ به خاطر تو کارم از دست دادم فرات. نسیم رفته انیم شکایت تنظیم کرده. شکایت واسه چی؟ वकीलش تعیین کرده. اگه نرم شادت بدم، مثلا شکایت می‌کنه. شهادت چی بده؟ بر... به تو گفتم ای حال این حالش خرابه نبردی دکتر. خب من نرس خودم می‌دونم. منم پیش گفتم. تازه که فرهاد داشت همه چی رو می‌خوادن پیمان. تا کی میبینی از اول ما قسمم تا کمک بوده ایلیا چطور خوب نیست فوی ما ده چیکار می‌خوای افسالست شماست. هر کاری می بکنی توی یکی به زندگی من گنگ نذا. جواب نداشت؟ نه ای بابا درد داری؟ آره. ببرمه درم اون با نه برسه بگو خب یه والا باشه، سب کن سب کن، اومدم چی میگه پیما کارم داره، میرم پایین بر چی من اینجا؟ برو دراز بکش برو آخ. چیه باز؟ بیا دقیق بشین ببینو ساره حالش خود برم بالا اینا رو باکیل ناصیم زیر مفت زده نمیتونه ازت شکایت از کنه. بله میکن کن فرات رو فر. خفه. برو از چهار تا آدمی که قانون سرشون میشه بپرس. من پرسیدم که دارم بدونه. چه چی خودت باختی؟ ناصیم اصلا کاری نیست. من سر کار اسقانونی بودم. اگه کسی بتون شکایت کنه منم نه اون. وقت وکیل تو اینا رو میدونه وکیل ناصیم نمیدونه. بخوسم بهتر شونن. و آدم بهش که شب راحت بخوابه. خداحافظ. باید کارچلش مصبته باید اون تقلید آیسیو دکتر آیسیو تخت خالی ناده تخت بعد سریع برای آیسیو برای چشم دکتر آیسیو برای چه این خونه گارده خونش شده آیسیو بس شما نیجا گمشو بیرون حق رو داری ما من تو برو گم شو بیرون این بزن آدم این همه زلات ایلیاول میگی ما تو برنامه داری راست میگی تو تو وضعیت وضعیت وضعیت ما آدم نیست تو فاز شوکاد من کاری میکنم که ایلیاول از تو بگیرم حالا تو چیکاره ایلیاول میخوای بر او دکی عمق من سر باز است قانونی ایده. فکر همه خرند. خافش تو تقریب شد. پاتی زنگ. من... بچ.. بچه هم میخواب نزم اجای برنیست پیمان جام پیمان پیمان جیست برن پلیم بر از اشتیش ایش شکر ماما جام ایریا ماما پاس بربرنیت برن مامایییش شد ماما نیی ماما نیی شکر ماما ن نه نگه دوسم عمر اس کونمت بس ردم چی خدا خدا خدا خدا خدا نه نه تشکس دکترتون درست بوده باید بچه دار شی ولی دکتر الان ما رو نداریم نیاز به زمان داریم اوزار روحیمون بعضی زندگیمون اختبار نبخشی بله؟ نه اما قرصو سما بخوره آره یه چند لحظه هم تلفن تلفونو بستن کن منگه میشه دکتر راه حل دیگه وجود نداشته باشه به هر حال شما یه تایم مشخصی فرصت دارید صاحب فرزند بشید از این جای به بعد خانم رحم شما با این وضعیتش بهتون ناسیب میزنه اون موقع فقط یه را باقی چی دکتر این که رحمتون رو در بیریم